سیدی از این وام ماتی. جبران سلام و علیکم براسلام. بتواند برکات من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستاین. خير خیر ناصر و مؤین اللهم صل على و سلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين وبلغ المصطفى محمد اللهم صل محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في العرين لا الله دائمه على اعدائهم اجمعين من الاونه إلى قیام يوم يوم الدين واما من كان من الفرها صان لنفسه خوفا للدينه مخالفا على هوا مطيعا لأمر مولاه فللعوام ايقلدوه هایی که اولا از نفسشون سیانت میکنند مدیریت برخویشتن دارند تدبیر نفس دارند سائن نفس دو اینکه حافظ دینه، فلسفه وجودیشون و مشروعیتشون از طرف معصوم اینه که اینا از دین باید محافظت کنند مدافع دین هستند سوم این که اونها مخالف بر هوا شما شد هوا یعنی اگر یه جایی هوای نفس اونها رو هدایت خاص بکنه به سمتی اینا باش مخالفت کنن بلکه بر علیهش عمل مقابل انجام بدن بعد متین لعمر مولا نواد اطاعت بکنن از امر مولاشون که معصوم هست خب فقها با این چارچوب با این چار ویژگی میتونه جواز تقلید از اونها صادر میشه مجوز پیدا کردن مقلدین این بخشش اخلاقیه همش علمی نیست چه با سبب بودش این است سیانت نفس حفاظت دین مخالفت بر هوا اطاعت از امر مولا غلبه بر اینه که خود ساخته بشه بعد اون میتونه رهبری کنه و دیگران پیرو بکنه حالا ما از این که اینو در تلهی بحث آوردیم که در آیت الله العظم ما صافی و دیده میشد دقیقا اینها بهشون تشخیص میداد ما کسی که فتوا داد متهم کنیم به سری امور کسایی رو متهم کنید فتهمو هم علا دین کام و ازشون بیروی نکنید که اونها رو حوز رو <تصفح> هوا و مکب به علا دنیا هستند ولی وقتی کسی دنیایی نیست شخصیتی معنویست حق اوست استنباد کنه استظهار کنه از متون نظر خودشو بر متون تحمیل نکنه اون چه که متن میگه و میده او رو بفهمه فتوا تبدیل کنه به قانون تبدیل کنه به مغلد یعنی به جامعه ایمانی که میخوان فاز مدینه فاضله بشن جامعه فاضله بشن و جز با پیاده شدن احکام امکان نداره و فکر میکردم که ایشون این شرایط رو دارن و تشکر میکنیم از معسیسه ایلو پرزوی امام سلام علیه السلام بغیرشم همینجاست که این همایش رو این نشست علمی رو برگزار کرد بحث های حاج محمدی خیلی عالی بود یعنی باید ادامه پیدا میکرد و هم علمی بود هم فقهی بود هم اصولی بود و هم بروز بود تطبیقی بود با فعالیت فقهی و خدمات مرحومه آیتولال ما در نظام خیلی عالی بود دیگه نیازی به بحث همسال بنده نبود حال خب ما چون مدیریتی هستیم از این زاویه خب نگاه کنیم مقداری این سبت که میریم حوض والد نظام و واجد نظام یه قانون نظامی که ما اکنون به نام نظام انقلابی نظام جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی یه آرزوی انبیاء بوده و اولیاء و معصومان حالا در عصر ما تحقق پیدا کرده به خاطر شایستگی هایی که این مردم داشتند و ظهور کردن در این عصر وفاداریشون بصیرتشون مجاهدتشون نمره بیست داره کمتر داشتیم همچین امتی در مقاطع تاریخی انبیاء آرزوی این امت را داشتند معصومین آرزوی این امت را داشتن. داشتند اگر می‌داشتند اونها با می می‌شد گفت لو انلی بكم او آوی الی رکنن شدید این تمنای یک پیامبر هست وقتی اون قوم هم جنس بازها هجوم میارد میگه این کاش من یک قوهی داشتم یعنی یک نیروی مدافعی داشتم یا یک رکن شدیدی بود بهش پناه میبردم اون نظام یک نظام رکن شدیده میدید یک آرزو رو در سوره هود یک پیامبر میگه حریف که نمیشه مردمی که باید پیروبش باشد زدش هستن لو. این لو لوی تمناست. آرزو بوده حالا دست نیافتنی بوده حالا ما قوه داریم <clears throat> یکی میگفت توی سینه پاسدارا نویشتر این دوله من قوه همونه نیروت، نیروی زمینی نیرو نیرو نیرو این قوه قوه حکومتی آرزو بوده رهبر معظم یه گفتن من فرمانده کل قوا هستم یعنی سه قوه با منه نه تنها قوه نظامی مغننه مجریه ازایه این ولایت مطلقه برای همین تنفیز میکنن برای همین نصب میکنن این قوه ها آرزو بوده. لو نلیب بکنم قوه. یک کاش من زور داشتم. زور فقط به این نیست کندم شخصیت مختدری باشه. نه. نظام میخواد. رکن شدید میخواد. شدید یعنی محکم باشه. امام صادق علیه السلام میفرمند اگر من حاکم میشدم با سیف و صوت میشدم. ایشون که معروف به مداد هست و معروف به قلم هست ولی بحث هست و تازیاله و یه همون رکنه شدید ما این رفت درک میکنم مرحوم آیت الله العظمه فازل لنکر صافی گلپایگانی این نظام رو یک رکنه شدید میدونست من نطقه رو در چیز جیاد کردم چون وقت خیلی فکر فرصت است رو یکی که میخونیم رو که در خبرگان قانون ایشون حضور داشت فقیه کارگزاری دیگه هست اونجا دید دارند سست بحث میکنند بلایت فقیه رو در یک رهبری سیاسی معمولی میخواستند با اختیارات محدود بعد ایشون برمیخیزن هست خواستید اینجا هتفرست. با قدرت میگن این اون ولد فقیر نیست ولد فقیر رو به عرش میبرن بعد ما میهم ایشون متهم میکنیم که فلان فتفاشون اینجوره ایشون مبنا شد اون نطقشون اون موقع ایشون سالشون بود کمتر بود بیشتر بود جزه چه شایستگی داشتن که رفتن تو خبرگان خانه اساسی مثل مؤسسان بود ایشون می درخشید من یادم هست من دنبال می کردم. و ایشون خیلی فعال بود و موضع می‌گرفت شدید یکی از موضع خیلی قوی وجب ولایت فقیر بود که گفتن اینجوری برخورد نکنید این ولایت فقی یک ستونیست مایه مشرویت اختیاراتش هم فوق همه این هست که شما میگید یعنی چند تقا بخواید مثلا بگید یک دو سه چهار پنج او یک فقیه جامع و شرائط اینجور ببینید مخالفاً خودش در اون ولایت نیست ولی میگه این قانون اساسی بناست زیر بنا بشه حاوی حقوق اساسی است. حقوق اساسی چنده؟ مثلا فرض کنید حاکم چه شرایطی داشته باشه؟ دو، چه وظایفی داشته باشه؟ سه، چه اختیاراتی داره؟ چهار، رابطه مردم با او چیست؟ پنج، رابطه دولت با او چیست؟ میشه خوانا اساسی حاوی ایناست. حقوق اساسی بهش میگه. تي تو جزئیت نمیاد. بعد ایشون میگفت تو این حقوق این اصول و فصول ولایت فقیه می دارم. اینو گفتم بانه مبنا بپذیریم که شون خودشون تصریح کردند به این خب نظام تشکیل میشه نظام انقلابی دوازده نظامی که در خورداد کلید خورد در بهمن به انقلاب تبدیل شد در فروردین به نظام تبدیل شد یکی از حامیان سرسختش آیت الله العظما صافی بود من چون دقیق پی می گرفتم این مدیریت قوی شهید بهشتی رو نگاه میکردم مقدم مراقعهی بنی سدر خیلی از شخصی ها جز اوزغ بودن همه نوعا مخالف بودن بعدی شاید بهشتی لازم مدیریتی جلوی اینا میستن آهای صافی لازم محتوایی جلوشون میستد و ایشون جانانه به کمک اون بخش از فقهای مثل دستغ مدنی صدوقی اونایی که بودن همش اونم شهید شده با هم بودن تو توی خبرگان. بعد این اصل رو مثل یک ستون خیمه تثبیت کردند. و یه خدمت ابدی به این مردمی کردن که آرزوی پیانبران رو اون لوهایی که میگفتن لواندلی این مردم اگه این کار نمیشد اون فروپاشی میشد میشد یه نظام سطحی معمولی غیرمؤثر و به زودی هم فروپشی میکرد الان که شما میبینید که نظام شما به چهل و چهارمی سال رسیده روندش کنید داره میشه نیم قرد کم کم و یک یا حسینی دیگه میشه نیم غرد. این نظام باقی مونده به خاطر امین فقیه. و فقیه امثال این فقیه کارگزار حمایت کردند و اون برقرار موند توی کار بعد ما میگیم این نظام مولود حوزه هست بعد ما گفتیم که والد چند تا وظیفه داره سه تا وظیفه داره مثلا بعد این نماد حوزه هم مرجعیت شما وقتی که مرجعیت رو مثلا میخواید حوزه رو مشخص کنید مرجعیت اون قلش هستش رهبر معظم مرجعیت رو احترام میکنه چون خیلی معتقد بودن با وجود فقی که ما از قبل از انقلاب بمادیم تعدد این امور نیاز نیست ولی حوزه خودش یک نوع قوام داره به مرجعیت هم نمادش امسال آیت الله لزما صافی والد نسبت به مولود سه وظیفه داره یک هدایت دو نظارت سه حمایت ببینید الان پدری نسبت به فرزندش سه کار می‌کنه هدایت ناظر بر پیشرفته مسیر یابی است به هدف رسیدن بر چه مبنایی با چه اصولی به یه هدفی برسیم این میشه هدایت نظارت ناظر بر ضعف هاست نظارت بر جلوگیری از انحرافه من فرزندم نباید منحرف بشه نباید آلوده بشه این میشه نظارت اونجایی که بحث اینه که بریم تو جاده خاکی نظارت میاد یکی هم حمایت، حمایت اینه که او رو زیر بالو پر میگیریم و نگذاریم او ضعیف بشه ویتامین های معنویش و جسمیش و جنسیش و وجودیش تضیف بشه اگر یکی عزیز سزل کم بشه اون فرزند ساله و سالم نمیشه خب طبق این قاعده که قاعده مدیریتی است، تو ستادها ها این کارو رو ما اگر نظام رو مولود حوزه میدونیم اینو این رو هم رهبر معظم فرمودند تو کنم ماها هم منوان یک عمر قدیهی انقلابی پذیرفتیم حالا دشمن ممکنه بیاد بگی که نه عوامل دیگه ای بوده مردم بودن چی بودن ولی نگاه آلمانه منصفانه من اومدم تو این پاورپونت ها موزه گیری های آیت الله عظمه صافی رو که بر سه بخش کردن بخش هدایتیشون نسبت به نظام بخش نظارتیشون بخش حمایتیشون که دیگه زور شد فرصت نیست من فقط اسم میبرم بعد این رو تقدیم میکنم ما دیشه هم ساعت سو و نیم از زاهدان رسیدیم قم و اونجا ترین رو پیاده میکنیم امامت و امارت من ترسم نرسم بعد این خاطره رو بگم ازش کلیپ پیشم هست بعد همین پردیستان شیش سال امام جمع بودم و این طرح مسجد محوری رو پیاده میکردیم محضر ایشون شرفیاب شدیم خود ایشون ای داشتن که بیان ببینیم چه میکند بعد که من حدود چلی دقیقه توضیح دادم ایشون یه جمله گفتم این فقیه کارگزار اون از این ایشون گفت شما این جمله رو دقیق داشته باشید شما مقاصد ما را اجرا میکنید حالا مقاصد ایشون چیه؟ خب اگه ایشون اون موزگیری هایی که ما گاهی تلاویگی میکنیم گیر میدیم به قول معروف خب ایشون نمیاد یه طریقی مامجومهی که منصوب این نظامه توی یه منطقهی که دویست هزار جمعیت داری شونزه هزار معمم توشه پر از اختلافات چالش ها ایشون چرا میاد تایید بند؟ فقط نمیگه احسند شما بیان ایشون رو ندیدید دستاشون رو بالا همینجور من همونجا قبل از اینکه همایش میگتم ایشون فقیه کارگزاره و فقیه است که نظام رو درک میکنه این میشه بوده حمایتی بسته حمایتی داره بسته نظارتی بسته هدایتی الان فرمشا تاجای محمدی عباد فقی که نگاه میکنید نوع بخشی از موزگیری هاش نظارتی است شون با دلسوزی موسیقی نظر میدن دل سوزی به آقای غالیباف میگن که حالا من این که میگم شما کمک کنید ببینیم تو کدوم قفصه هست آقای غالیباف میگن که شما چرا با دنیا تعامل نمی کنید چرا دشمن می تراشید بعد یه سایت سطحی بر علیشون توهین میکنه. میگه هشت سال چی جنگ فلان به یه مرجعی گه این عبرت نبود بحث های مذاکرات فلان حالا الان دو جناح هست بعضی‌ها قائل به مقاومت هم مثل شما حتی اگه اشتباه نکره بعض، بعضی ها به سازش چیزن؟ تعامل سازنده هستن خب فقیه کارگزار نبود موزه بگیره؟ بعد غالبا رئیس مغننه است مثلا سفر استانی داشت متقوم شون گفتن این نظام باید باقی بمونه این نظام آرزو هست حامی نظامه من میگم شما کمک کنید خفصه شما علوم کنید این موزگیری الان هدایتی بود یا حمایتی بود یا نظارتی برداشت یا هر سه ها تفکیک کنید من فکر می‌کنم بوده هدایتی بود. ببینید حالا استاد مکرم فرمودند هر سه ببینید ایشون میگن که این نظام فراورده های فقهی، فکری جهادی، مبارزاتی است، باید باقی بماند و باید تاثیرگذار باشد. در جهان امروز مقاومت با یه جور عوارزی داره تعاملیش بعد به اینشون میگن اینجور یه فقیهیست میاد بر این مبنا اصرار میکنه بعد بنده ای که نمیفهمم بالاخره ما باید موزگیری همون علمی باشه چقدر زیبا بحث میکنم مثلا هی فهمهی دارم تکرار میکنم شاید خود اینشون ناراحت بشن اون بحث بود حالا من نگاه مدیریتیش نگاه میکنم شما حالا یه جنبندی آقای نعیمیان خیلی جنبندی خوب میکنم بگیم که یه فقیق کارگزار نسبت به نظامی که خودش تو خبرگان آنه اساسی ستونشو محکم قرار داد با اون نطقه آتشینش این اواخر ایشون یکم ای لکنت داشت ما میرفتیم با... به صد رسیده بودن خی... زبونش رو میگیره ولی اون موقع خیلی بیان عالی و چلو اینا میستدن حالا این نظام درست شده ایشون دیگه سرد که نشده هیچی ترت که نشده هیچی میگه این نظام باید بمونه و محفظه میگه راهش اینه این هدایته راهش چیست؟ من پریز دیدم آقا به فعالین اقتصادی گفتم من دخالت نمی کنم من هدایت می کنم این خودش خیلی مهمه اینو که میگن دیکتاتوری استبداد دینی میگه من اصلا دخالت نمی کنم من هدایت می کنم و تأکید می کنم بر اجرا نه اجرا می کنم اتفایی گفتم هر وقت ما مومدیم بهتر میشه. چرا به من ارجا میدید من آقای رحیمیان یه روز با مصاحبه میکردم و هم کتابی رو به نام مدیریت امام خومینی به امر آیت الله ابراهیم امینی مرحوم بعد من میرفتم مساحبهاتم با رحیمیان که رحیمیان بعد آقای رحیمیان میگفتم من با امام زندگی کردم نامه های زیادی میامد از مردم ایش من باز نمیکرد بعد من امام چرا این نامه‌ها باز میکنه. یک امام مربت یه روز پرسیده می‌شون گفت این وزیفه من نیست این آقاین تنبل می‌شن این مسئولین اونا باید انجام بدن بینید اصلا از خودشون حالا بیاند این نامه‌ها رو بخونن یه فقیهی سه کار میکنه. هدایت من الان دیدم رهبر معظمم همین کارا رو میکنن هدایت میکنن. نظارت میکنن و حمایت میکنن. بعد من چند تا مثال زدم اونها رو براتون یاد داشت کردم اینجا که بعد های خواستی دیدیم آیه مشکانی من نمشنم آیت الله صافی سه رو به خوبی انجام داد حمایت میکرد تا نظام ضعیف و منزوی نشه نظارت میکرد تا نظام منحرف نشه هدایت میکرد تا نظام اثر بخش میشه تو مدیریت اثر بخشی رو به این میگن که علای پارسیبان اجازه بده اما هر اقدامی میکنید شما رو به هدف نزدیک کنیم میشه اثر بخش اثر بخشی به نسبت به چی هست هدفه ولی کارایی به چی هست به با کمترین هزینه بیشترین فایده رو بدید میشه کارایی بعد ایشون بوده هدایتی بره اثر است یعنی شما میگید که سقوه عزیز به کمک ولی فقی میادیشون اون سقوه رو به این سمتی بره ولی چون بخالف الان هوا هست ممکنه که یه جای نظر شخصیشون رو بدن ولی تو جنبندی خوبی که استاد نعیمی فرمودن هیچ وقت به تعارض نمیرسه چون با می مرزشون کجاست من چند تا ب... همایتی روی اینجا نوشتم مثلا عضویت و دبیری شورای نگرپان هشت سال اول آقای محمدی گیلانی بودن بعد ایشون شدن و تحویل دیگران دادن من, من اشتباه نمی کنم یکی از آقایی گفت شون دو روز مثلا چیز بوده ولی هشت سال خیلیه هشت سال جنگ تحمیلی ایشون بشه رئیس فوقه ها تبیر فوقه ها با مبانی که داره هرز آیت الله خزالی که تو این تیم بودند خطبه قبل از خطبه ها نکته گفتن امام به ما گفتن شما احکام اولیار به چسبید ولکنید ما به امر امام ولی همین امام به ما گفت اگه اختلاف با مجلس شد مرجعی ای هست که همون تشخیصم هست بعد این که حالا مواردش رو گفت این بندیجی من یادم حالا شما خودتون اون موقع هنسن انسلت... حالا من تو معتنش میدم که ما تو سپار که ما خواهید کنه فردی رو میگفت حق با آقای هاشمیز یا شرای نگرمه یعنی پاستار میخواستم چون من خودم مسئول گذینش سپاه بودم سال شست بعد سپاه میخواستم می اوز بگیریم از ساله اینجوری میکردن یعنی چی؟ یعنی تقابل داشت مجلس نمادش آقای هاشمی بود شرای نگهبان نمادش آقای مثلا همین آقای صافی و آقای خزالی اینا مثل دیج از احکام اولیه دفاع میکردن بعد میگفتن امام گفتن گفتن شما وزیفتون اینه ببینید چقدر جالبه شما وزیفتون اینه خواهی صافی بر همین اساس بند جیم و اون عراضی رستایی و شهری و که به مالکت خصوصی میخور نمیخوره اون موقع یادم از اسمش بود بند جیم حالا ایشون رو اشاره کردم ربانی شیرازی برندش ایشون بود که مرحوم شدن ایشون رو بند جیم این مکتب گلپایگانی بود مکتب ایشون که داماد ایشون چون داماد آقای گلپایگانی هستند آقای صافی من یادم یه نامه ای رو آقای محمد ازا گلپایگانی آیت الله از من نوشتم به شاه که این انقلاب سفید جالب نیست بعد ایشون که نمهنده بفرستید ایشون آقای علی صافی رو که برادر بزرگ آقای چیز فرستید که شاه یعنی اینا اینقدر دیدشون باز بود شاه هم این خاندان رو بعد گفت چون شما نماینده مرجعی هستید بیایید ای اینا فقهای هستن موضع میگیرن حالا اون موقع شاه اونجور ف... تو نظام ما اینجور نمیشه فقی خونسا باشه که چون فقی... کسی است که داره مبناست ولی مدیریت فتوا به چیه مدیریت فتوا طوری موضع بگیریم فتوا بدیم نظامی که ما خودمون پدید آوردیم تضعیف نشه این میشه بود حمایت ولی خب یه جایی مثلا به نظر می... من دیدم بیان شدیدی این وزیر اقتصاد اومد و پیشون روی به رواحاریشون خیلی محکم ایستادن خب این نظارته خود ما قائلین بگیم نباید باشه بعده ربارم مطرح. تفکیه جنسیتی رو اینشون به شدت و سراحت مطرح کردن باید مثلا تا میتونیم تو دانشگاه ها و جاهای دیگه راجب رسانه ملی رس سریح بحث میکردن میگفتند و نه به عنوانی نظر حکومتی با عنوانی نظر فتوایی فقهی در قالب یکی از این سبسته هرکس این سکار رو انجام بده او نقشه فقیه کارگزار داره و نظام رو مولود خودش میدونه که باید از این مولود مسعود چکا کنن؟ کارگزاری کنن مثلا کارسازی کنن بمونه مثلا دوستان جنبندی بس ما چون ازان شد این شد برید تمام این موضوگیری که شد رو ببینید کدوم رو میتونید جایزش هم دیگه آقای مشکانی میدن اگه خوب <تصفيق> شما بحثمون زمنه اقامانه هم هست حالا شما شما دید نزدیک زور و خسته و اینا هستید ولی این در این فنی بودن من این رو من اون خاطره هیچ وقت از ذهنم نبید این الان من سی استان رفتن با سی نمانده ولی و سی استاندار تماما بدون استثناء از این طرح امامت مارد بدون استثناء کرده. و هر استانی مالاً یه پایلوت داریم تمامش به خاطر دیده ایشون بود فقیر کار یه جمله چرا موثره گفت شما مقاصد ما را بعد یه جمله دیگه بشون گفت وای قوامی کسانی دورو برد بیان هم اینن گفت که به این مثل خود عقیده داشته باشه و این دیده مدیریتی است دیگه چون نیرویی که بخواد اجرا کنه. دیدم ایشون بعد من از اون روز انقیقی شارژ شدم هنوز اون انرژی در من هست من هفته دو استان میرن الان اخیران آقای حاج عبالقاسمی دیدن ما تو تمام رسانار من رفتم صحبت کردم حامی شدن بعد آقای عبالقاسمی میگفتن که من رابطه چیز هستم رئیس شمول و روحانیت و حوزه گفتن از طرف منم بر سی استان تمام شورای اداری بدون از مندرباز شروع کردیم خود استاندار تا سایرین بودن من نمیخوام چون اینجا اومدم و عرص مرم. ولی واقعا یک جمله جمیله چقدر محسره چقدر محسره اشون با اون بیان معنوی و شخصیتشون گفتن که ممن گفتم خب مقاصدیشون چیه مقاصدی مرجع تقلید چیه خب همینه دیگه لعن نلی بکن خود. باید گفتن یه طلبه اومدن این کار رو میکنه چرای محد نکنیم بعد هدایت شروع شد ضبط کردیم مثلا چه چیزایی باید انجام بدیم برای اینکه منحرف نشیم یک استفارشاتی کردن که یکی شبی بود که نیروهاتون رو درست کنید بعد حمایتشون هم که دیگه خیلی گرم و داغ بود اینم هم ما دیگه خیلی هم اصخایی میکنیم مقره بود نه صحبت کنم دیگه من اونی که آخر صحبت میکنه دیگه با مخاطبین خسته و یه آخرین آخر چیز ولی من سرکردم بیانم مثل آقای محمدی ولی عمیق نباشه یکم مطلبش عمقی بود ما, ما, ما معروفیم به این که مطالب سخت رو به زبان آسون میگه فخول اداره ما روزی یه تولید داریم یه قاعده در میاریم این که من گفتم حاصل این سالها بود نه این که شما فکر کنید الان ما دیشب میشستم این عباد رو مطرح کردیم پروردگارا ما رو تو دهی فجر برگزار شد امام آمد شاه رفت یعنی امامت آمد شاهنشایی رفت نه یه شخص آمد یک رفت نظامی رفت نظامی آمد این نظام نظام امامت پس ما باید رو امامت کار بکنیم چون امامت مشکل گشاست خدایا ما رو در این مسیر خطیر طولانی توفانی و بی انتها موفق و مقاوم و پیروز بگردان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته